فصل شانزدهم خاندن نوشتن و بیشعوری میشه این مدرکم رو برام بخونی دیپلمهای بیشعور خطاب به مادرش یه بار پژوهشگری که داشت در مورد کاهش کیفیت نظام آموزشی تحقیق میکرد از یک دانش آموز سال آخر دبیرستان پرسید که به نظرش چرا در نظام جدید آموزشی انقدر بی زیاد شده؟ دانش آموز پاسخ داد، نمیدونم و فرقیم برام نمی‌کنه. پاسخ دقیقتر رو دانش آموزی که ترک تحصیل کرده بود داد. خب، چون مدرسه ها رو ادهی بیشعور میچرخون البته واقعیت اینه که آدمای درست و حسابی زیادی مشغول به تدریس در هم. اما دیوان سالارانی که برای معلم‌ها تعیین تکلیف می‌کنن که چه چیز رو چگونه درس بدن کار رو خراب می‌کرن از اینجاست که بی‌شعوری گسترش پیدا می‌کنه زمام امور از دست متولیان محلی مدارس به دست مسئولان دولتی افتاده و به این ترتیب نظام آموزشی ما در چند بره بی‌شعوری گرفتار اومده علائم این بیشعوری فراوانه، از جمله یک، وقتی که بیش از نیمی از دانش آموزان در شانزده سالگی از نظام آموزشی حذف میشن، مدارس ما بیشعور شدن. دو، وقتی که فارغ و تحصیلان دبیرستانهای ما در خواندن و نوشتن معمولی هم لنگ میزنن، مدارس ما بیشعور شدن. سه، وقتی که ارائه دروس پیش نیاز برای یاد دادن درسهای دبیرستان در دانشگاه ها به امری معمول بدل شده باشه، مدارس ما بیشعور شدن. چهار، وقتی که میتوان معلم ها رو به خاطر تنبیه دانش آموزان بیتربیت از مدارس اخراج کرد، اما آن دانش آموزان همچنان به حال خود رها هستند تا به رفتارشون ادامه بدن، مدارس ما بیشعور شدن. پنج، وقتی که از این حق که هر دانش آموزی بتواند طبق دین و مذهب خود در مدرسه اش نیاگش کند جلوگیری می شود، مدارس ما بیشعور شدن. شش، وقتی که مسئولان مدرسه مجبورند که برای برنامه های فوق برنامه و جنبی بیشتر از کیفیت آموزشی وقت بگذارند، تمام جامعه ما بیشعور شده. پیش شورای که مسئول این افتضاحان استاد تفره رفتن از زیر بار مسئولیتاں اتادی معلمها اصرار داره که معلمها بیگناهند متولیان محلی مدارس مدعیان که قدرت کافی ندارن و مقامات دولتی هم تنها کاری که بلدند اینه که تهیه گزارشی در این زمینه رو در دستور کار قرار بدن که تدوینش بیست سال طول خواهد کشید به قول یک صاحب نظر اینا بیشتر بلدن مسائل رو تحلیل کنن تا اینکه راه حلی پیدا کنن. حتی به نظر می که فکر میکنن تحلیل همون راه حل. از همین روز که دائم در گوش ما خوندن که کاهش کیفیت نظام آموزشی با هر چیز با ربط و بیربتی از باران اسیدی و کمبود ویتامین بگیر تا ازدیاد فقر عمومی و تبهکاری مرتبطه. حتی بدتر از این بسیاری هستن که ما را ترغیب کنن تا این بیکفایتی و عدم صلاحیت موجود در نظام آموزشی و به عنوان هنجار و میزان قبول کنیم. یه روانشناس متخصص در امور آموزشی به نام دکتر جرام کاپد به ما امیدواری میده و میگه اگر فارغ و تحصیلان جدید نمیتونن بخونن، در عوض میتونن از رادیو تلویزیون و نوارهای صوتی اطلاعات بگیرن. اگر نمیتونن جمع ببندن به جاش میتونن از ماشین حساب استفاده کنن و اگر نمیدونن کجا هستن میتونن بیستن و از پلیس بپرسن و همینطور ولگرد و بیمسئولیت به زندگی ادامه بدن و سطح توقع جامعه از خودشون رو پایین و پایین تر ببرن اما پایین آوردن انتظارات و استاندارت ها چاره مشکلات نیست ما مجبوریم که با واقعیت با همه تلخیش روبرو بشیم نظام آموزشی ما بیشعور شده چگونه این اتفاق افتاد و چه کسی وقتی آموزش و پرورش و آب میبرد خوابش برده بود هرمان آیشمن که پنج سال روی این مسئله تحقیق کرده معتقده که علت اصلی این مسئله ترس از متهم شدن به تبعیض علیه حماقته که روز به روز زیادتر هم میشه او در کتاب ارزشمندش با عنوان چرا جانی نمیتواند بنویسد و برایش اهمیتی هم ندارد مینویسد، همه از این واهمه دارند که مبادا در به شکست کشاندن و در نتیجه لطمه زدن به روحی دانش آموزان سهین باشند. بنابراین دائم کتاب های درسی و امتحان ها را ساده تر می کنند و به حد اقل ها متوسل می شوند. بعضی‌هام تأثیر نظریه‌های روانشناسان کودکو در این پدیده مقصر می‌دونن روانشناسانی که معتقدن برای آموزش کودکان نباید سخت گرفت تا مبادا انگیزه خلاقیت و احساساتشون خوب رشد نکنه به عقیده اینا اعتماد به نفس بالا و فعالیت‌های اجتماعی از فکر کردن اهمیت بیشتری داره کارشناسان مسائل آموزشی کم کم دارن به این نتیجه میرسن که این طرز تفکر اشتباهه مالی گولدباد در مقاله ارزشمندی در مجله آموزش نوجوانان مینویسه دانشآموزان از کاهش کیفیت و تنزل استانداردهای آموزشی بیش از همه آسیب می‌بینند آری ما اکنون دانشآموزانی با اعتماد به نفس بالا داریم که از حماقت خودشون لذت می‌برند آری دانش آموزان خلاقی داریم که در بهانه آوردن برای غیبتهایشان و توجیه انجام ندادن تکالیفشان خلاقیت بسیاری دارند آری ما دانش آموزانی داریم که بسیار با انگیزند. اما فقط برای راه انداختن جیغداد و کتککاری آری ما اکنون مطمئن هستیم که دیگر هیچ دانش آموزی به دلیل سرکوب احساسات خود دچار آسیب روانی نمیشود نتیجه هم آن شده که آنها بیش از هر وقت دیگری مثل بیشعورها رفتار میکنند بعضی از آنها حتی انتظار دارند که وقتی میخواهند تو حیات مدرسه مواد بکشند پلیس از آنها مواظبت کند که مبادا کسی مزاحمشان بشود مدارس در برآوردن نیازهای جامعه هم ناموفقند. البته این به این معنا نیست که هیچ خواسته ای را برآورده نکرده باشند و هیچ کاری نکرده باشند مدارس بازند و به کار خود مشغولند اما در سی سال گذشته مثل گروگانی در خدمت امیال و خواسته های گروه خاصی بودند که میخواستن از نظام آموزشی متمرکز دولتی و فراگیر برای تغییر دادن جامعه بهره ببرند باید قبول کنیم که هرکس یا گروهی که یک نسل از بچه ها را از آموزش و پرورش خوب محروم کنه تا به هدف خودش برسه بیشعور تمام عیاره تنها راه بهبود کیفیت آموزشی، بیرون کردن بیشعورها از نظام آموزشی و بازگرداندن اهداف اصلی آموزش و پرورش یعنی آموختن فکر کردن، خواندن و نوشتن به بچه هاست بلند است اما من فکر می امکان این کار وجود داره. به عقیده من نخستین گام در راه این اصلاحات گنجاندن یک درس جدید در برنامه درسی دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی با عنوان بیشعور شناسی که می زیر مجموعه دروس اجتماعی قرار بگیره. ملزومات ارائی این درس هم عبارت است از یک. یک نسخه از همین کتاب بیشعوری. دو، یک چراغ قوه برای جستجو در تاریکی سه، یک آینه به دلایل بدیهی چهار، نام و متولیان محلی و مدیران مدرسه و پنج، فهرستی از کتابهای ممنوعه ی کتابخانه ی مدرسه که حتماً گد مطالعه بشن یعنی در امتحان پایان دوره این درس از دانش آموزان پرسیده خواهد شد به نظر شما چرا این کتاب ها ممنوع اعلام شده بودن و چه چیزی از خواندنشان یاد گرفتی؟